بیدرسه چنگابر شبال 643 بی آر، فاسد، بی تربیت. این مرد ذری عدب ندارد وقتی شنیدم شمس تبریزی به مدرسه حمله کرده و جلو چشم شاگردها برای امویم رجز خانده باورم نشد کاش من هم آنجا بودم قبل از آن که فرصت کند و دهن مسمومش را باز کند از پس گردنش میگرفتم و از در بیرونش میانداختم صد حیف که عمویم این کار را نکرده از آن روز به بعد شاگردها جر و بحث آنها را یک کلاخ چلکلاغ می کنند و اینور آنور تعریف می کند. بیشتر حرفهایشان دروغ محض است. به آن درویش پست بیش از آن چه لایقش باشد اهمیت می دهند. امشب اعصابم خراب است. همه اش به خاطر آن بدکاره. هیچ جور نمی توانم فکرش را از سرم بیرون کنم. گل کویر به جعبه جواهراتی می ماند که کشوهای مخفی دارد. حتی موقعی که فکر می کنی مال توست و توی دستت داریش قفل و دست نیافتنی است چیزی که بیشتر از همه حرسم را در میآورد حالت تسلیم بودنش است وقتی کتکش میزدم چرا مقاومت نکرد چرا جواب مشتهایم را نداد مدام جلو چشمهایم میآید که مثل پادری بیدفاع جلو پاهایم خوابیده اگر مرا میزد یا داد و فریاد راه مینداخت و کمک میخواست فورا دست از کتک زدن میکشیدم اما همانطور روی زمین خوابید لام تا کام نگفت هر مشت و لگدی را که میزدم قبول میکرد انگار حتی به مردن هم اهمیتی نمیداد. چند روز است فکرم را مشغول کرده. آخر سر طاقت نیاوردم. دوباره به آن خانه بدنام رفتم. سر راه با خودم می گفتم گل کویر موقعی که مرا ببیند چه کار می کند. اگر شروع به شکایت می کرد یا می نمیخواهد مرا ببیند چهار پنج قروش اضافه میگذاشتم توی مشت رئیس خونسا. حساب همه چیز را کرده بودم. آماده ی هر وضعیت احتمالی بودم. تنها احتمالی که نمیدادم این بود که آنجا نباشد. نگو گل کویر فرار کرده بود. داد زدم. منظورت چیست که گل کویر اینجا نیست؟ پس کجاست؟ رئیس خونسا یک راحت الهلقوم توی دهانش انداخت و با عصبانیت شروع کرد به جویدن. همانطور که دهانش شلپ و شلوب صدا میداد گفت بی خیال آن زنک بشو بیا بقیه دخترها را نشانت بدهم بیبرس جان. گفتم این زنهای ستای قازت را نمیخواهم چا میخواهم گل کویر را ببینم همین الان با آنکه بچوری نگاهم کرد اما انگار نخواست جواب تند و تیزی بدهد با صدایی گرفته طوری که انگار به زبان آوردن حرفی که میخواست بزند سختش باشد گفت گل کویر اینجا نیست رفته پتیاره وقتی همه خواب بودند فرار کرده حرفی که زد چنان چرت بود که خنده‌ام گرفت کی تا حالا شنیده روسپی از خانه بدنام فرار کند فوری بیاورش اینجا آن زن را یک دفعه خونسا طوری نگاهم کرد انگار اولین بار بود مرا می دید گفت تو کی هستی که به من دستور می دهی؟ از آن چشمهای ریزش آتش می بارید. گفتم من کی هستم؟ معمور حکومتی که عمویش آن بالا بالاها خرش می رود اگر بخواهم در اینجا را گل می گیرم و همه را میریزم توی کوچه. بعد از توی کاسهی که بقل خونسا بود، یک راحت الحلقوم برداشتم و به دهن انداختم. انگشتهایم را هم با لباس رئیس خونسا پاک کردم. با ترس و نگاه نگاهم کرد و جرأت نکرد اکسل عمل نشان بدهد. بعد در حالی که خودش را به مظلومیت زده بود گفت من چه تقصیری دارم، همه اش آن درویش است. اوست که گل کبیر را توی درد سر انداخته. آن یارو بهش گفت از این کار دست بکشد و توبه کند. اولش نفهمیدم درباره چه کسی حرف میزند. اما یک دفعه ملتفت شدم درویشی که رئیس خونسا حرفش را میزد، کسی نبود جز شمس تبریزی ای بی اول برو آبروی عمویم را جلو شاگردهایش ببر بعد هم بیا باعث بشو پتیارهای مشهور از ای مشهورتر فرار کند دیگر بس است باید به آن مردکی که بی نشان بدهم دنیا دستکیست